اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند بخشنده بخشاگشگر به سپید دم سوگند و لیال و به شبهای دهگانه و الشفع و الوتر و به زوج و فرد و اللین اذا یسر و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است الفی ذالک قسم حجر آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خیرد نیست؟ الم تا كيف فعل رکبیعاد آیا ندیدی پر گارت با قوم عاد چه کرده؟ ایناممد العد و با آن شهر ارم بااعمت الذي لم يوقلا قوممثلهاافبلد همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود. و ثمود الذين الصخر بالواد. و قوم سمود که صخرهای عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ میساختند و فرعون ذل اوتاد و فرعونی که قدرتمند و شکنجه بود الذين طغوا في البلاد همان اقوامی که در شهرها تقیان کردند فی ها و فساد و در آنها به آوردند به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت این ربک یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است فاما فا الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فا فيقول ربي اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام میکند و نعمت میبخشد مقرور می شود و میگوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما اتام ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانا و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ میگیرد گیرد معیوس می شود و میگوید. پروردگارم مرا خار کرده است چنان نیست شما یتیمان را گرامی نمی دارید ولا و یک دیگر را بر اطعام مستمندان مندان تشریق نمی کنید وتأكلون التراث اکلا لما و میراس را از راه مشروع و نامشروع جمع کرده میخورید وتحبون المال حبا جمع و مال و را بسیار دوست دارید کلا اذا دکت الأرض دکا دکا چنان نیست که آنها میپندارند در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود و ربك ربک والملک صفا صفا و فرمان پروردگارت فرار سد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند و جیع يوم اذن بجهندم يومئذ يتذكر الانسان و له در آن روز جهنم را حاضر می کنند آری در آن روز انسان متذکر می شود اما این تذکر چه سودی برای او دارد يقول يا ليتني قدمت لحياتي میگوید ای کاش برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم در آن روز هیچ کس همانند او خدا عذاب نمی کند و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی‌کشد یا ایتُ ان‌نفس تو ای روح آرام یافته ای روحی‌ای به سوی رب خود راضیه مرضیه پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنوده است فدخلی عبادی پس در سلک بندگانم درای آی و, و در بهشتم وارد شد.